لەسهم بنی یادۀ یک ملت در سال 1226 میلادی مجمعی از رؤسا موسوم به قوریتای تموچین را که حدود 39 سال داشت بالاتر از سن کمال طبق معیارهای های میانه سرور مطلق تمامی قبیله مغولستان اعلام کرد تموچین به عنوان خان بزرگ ملت مغولستان که برای نخست بار به وجودی واحد تبدیل شده بودند بر تخت نشست ملت مغول در این زمان از کوهای آلتایی بر غرب تا کوهای خینگان در شرق و از دریاچه بایکال تا صحرای گوبی پراکنده بودند تمچین لقب جدید چنگیز خان را یافت که به معنی فرمان روای دریاوار و به مفهوم قدرت عالیه و اقتدار بود تموچین که در این زمان چنگیز خان خانده می شد، همه ی و در نتیجه تمام قدرت نظامی شمال صحرای گبی را به صورت واحد در آورد و معمولیت خود را در پیش گرفت تا این قدرت را به نحوی موثر به کار گیرد. چنگیز با تکید بر وفاداری هر جنگجوب ارتش و قرار دادن خود به عنوان کانون وفاداری ارتش یک دستگاه نظامی عالی را به وجود آورد. که پاسخگوی حوصهای او بود او به همین ترتیب کوشید تا حکومتی تشکیل دهد که همانند شیوه نخودی نسبت به خاندان او وفادار باشد غبایل دشت پهناور در رسوم قبیله یه مشابهی سهیم بودند اما تا زمانی که چنگیزخان برای ایجاد یک دولت اقدام کرد آنها دولتی نداشتند رسوم قبایل برای اداره کردن آنها که قوم کوچنشین خودگردانی بودند همواره کفایت میکرد و هرگز نیازی به حکومت نداشتند. مقالان به این علت که حکومت مرکزی، ادارات مدنی، زبان مکتوب یا اماکنی برای تعلیم کارکنان غیر نظامی نداشتند شروع کردند به ساخت دولت خود از پایین به بالا. چنگیز چنان که در مورد ارتش خود عقیده داشت، معتقد بود که تشکیلات و وفاداری کلید موفقیت دولت مغول است. پاداش دادن به پیروان وفادار نخستین اقدام چنگیز پس از جلوس بر تخت سلطنت، اعطای پاداش به پیروان وفاداری بود که صبات قدم و فداکاریشان او را قادر ساخته بود تا پیروز شود. کتاب تاریخ سری 21 بند را به شرح خدمات ارائه شده به چنگیز خان از سوی حامیان او و پاداش هایی که چنگیز خان بعدن به آنها میبخشید اختصاص داده است چنگیز هنگامی که تشکیلات فرماندهی ارتش خود را برقرار کرد فرماندهان را از میان وفادارترین پیروانش انتخاب کرد او به بورچو که بدون انتظار هیچ پاداشی کمکش کرده بود اسب های دوزدیده شده اش را باز پس یک منصب فرماندهی نظامی بخشید. چنگیز که در میان فرمان روایان عصر خود فردی برجسته بود، اعضای خانواده اش را برای مناسب کلیدی تحییر نکرد. او در مورد وفاداری خانوادگی تا حدی شکاک بود و در دادن منصب به خویشاوندانش تردید داشت زیرا میترسید به او خیانت کنند. اما او سخاوتمند بود و به کسانی که خیشاوندش نبودند ولی وفاداری خود را به او در جنگ ثابت کرده بودند اعتماد داشت. ایجاد ساختار قدرت تجربه به چنگیز آموخته بود که نمیتواند به توایف جداگانه یا خیشاوندان خود یا حتی یک دوست آندایی اعتماد کند. او موفق شده بود از موقعیتی حاشیه‌ای در دشت پهناور به فردی دارای قدرت و نفوز بسیار تبدیل شود اما درک می کرد که حمایت ها بی صبات است و وفاداری به آسانی تغییر می کند حفظ سلطه بر سپاهی تقریباً ست هزار نفر مستلزم وفاداری بود چنگیز برای محقق ساختن اینکه سربازانش به او و ملت وفادار باشند نه به قبیله خود کوشید تا قدرت قبایل را کاهش دهد او مردان را بیشتر بر اساس قدرت رهبری و مهارت آنها ترفی می تا بر مبنای موقعیت اجتماعی یا پیشینه خانوادگیشان چنگیز برای تضعیف وحدت قبیلی و قدرت رؤسای قبائل واحدهای نظامی ایجاد کرد که بر مبنای وفاداری های قبیلی اصفار نبودند او مردانی از قبایل متعدد را یک جا جمع کرد و آنان را در واحدی قرار داد که فرمانده اش مردی بود از قبیلی دیگر چنگیز این کسانی را که محارتهای عالی داشتند بدون توجه به طبقه یا نژادشان مورد قدردانی قرار داد و ترفی آنها را مویسر ساخت ارتش او ارتشی شایست سالار بود و حتی چوب آنان یا پسرانی که در ها کار میکردند در صورت اثبات شایستگی می توانستند به فرماندهی فوجها برسند این عمر در موارد بسیاری به این معنی بود که اشراف تا به دستورات فرماندهی میشدند که به دلیل کارهای بزرگ خود به مناسب فرماندهی منصوب شده بود تمامی ملت بیش از واحدهای ای به واحدهای نظامی تقسیم شده بود این ساختار جدید نظامی با سنت تشکیل سپاه ها بر مبنای زمینه های قبیلهی تفاوت بسیاری داشت و در نتیجه ساختار اجتماعی ملت مغل را دگرگون کرد سلسل مراتب فرماندهی فرماندهان غرانها یا همان واحدهای هزار نفره افسران اصلی عملیاتی ارتش مغل بودند در سال 1226 میلادی آنها 95 تند بودند این مردان به نوبه خود تحت فرمان افسران تومان بودند. با سازی ارتش مغلان به آنها برتری کاملی نسبت به حتی ارتشهای قدرتمندترین و متمددترین دولتهای آن اصر بخشید. ارتش مغول سریعاً به شکست ناپذیری شهرت یافت. جوانی پلان و کارپینی راهب که در دهه 1240 میلادی به میان مغلان سفر کرد چون این گزارش داده است. چنگیز خان مقرر کرد که ارتش به طریقی سازماندهی شود که یک نفر یعنی کسی که او را فرمانده ده مرد می در رأس ده مرد قرار داده شود یک نفر موسوم به فرمانده صد مرد در رأس صد مرد قرار داده شود سربازی موسوم به فرمانده هزار مرد در رأس ده فرمانده صد مرد قرار داده شود و یک مرد در رأس ده فرمانده هزار مرد باشد ای که آنها برای این تعداد به کار می‌برند به معنی تاریکی است دو یا سه رئیس فرمانده تمام ارتش باشند و در عین حال در این ترتیب یک نفر فرماندهی عالی را در دست بگیرد چنگیز خان برای توسعه ارتش خود یک شیوه سربازگیری را برای همه افراد مذکر از 15 تا هفتاد سال معمول ساخت پزشکان کاهنان و مدیران از خدمت نظامی معاف بودند و مردان متعلق به ملتهای مغلوب مشمول قوانین سربازگیری متفاوتی بودند زیرا مغلان نمی توانستند از وفاداری آنها مطمئن باشند مردان مجاز نبودند واحدهایی را که مکلف به حضور در آنها می ترک کنند مجازات ترک واحد مرگ بود به همین ترتیب خانواده های این مردان که همراه آنها سفر می و مسئول تدارک تجهیزات نظامی آنها بودند در معرض نظارت فرمانده واحد بودند. اشراف نظامی جدید که به واسطه این ساختار قدرت به وجود آمدند موقعیت خود را مدیون فرمان روا بودند. بنابراین کاملا به او وفادار بودند. دستگاه جنگی هنگامی که تازه واردان به اردو می آن را دارای طرحی معین می آفتند، به طوری که خیمه پزشکی، اسلح خانه و غیره همیشه در محلهای مشابه قرار داشتند. اردوها را معمورانی مسئول تدارکات مصوم به جورچی اداره می کردند. این افراد اهددار تهیه و توضیح ملزومات بودند و سلاح ها و ملزومات دیگر را در میان مردان توضیح می کردند. هر سرباز مسئول بود که تجهیزات خود را به خوبی حفظ کند تجهیزات یک جنگجوی مغل با لباسش شروع می شد که برای حفاظت او طراحی شده بود هر جنگجو زیرپیراهن محکمی می که از عبریش هم بافته شده بود این نوع زیرپیراهن پیراهن بدعتی آموخت شده از چین بود اگر تیری زره جنگجو را سوراخ می کرد پیراهن ابریشمین به او کمک می کرد زیرا تیر ابریشم بافته شده را سوراخ نمی کرد بلکه آن را به داخل زخم می کشید. به این ترتیب پزشک یا سربازی دیگر می توانست با کشیدن آهسته ابریشم دور زخم پیکان را از زخم بیرون آورد. در غیر این صورت بیرون آوردن پیکان فرو رفته در گوشت به معنی ایجاد زخمی بود بسیار بزرگتر از زخم ایجاد شده به وسیله تیر. هر جنگجو روی این زیر پیراهن ابریشمین یک بالا پوش می پوشید و اگر عضوی از سوار نظام سنگین اسلاحه بود که در نبرد تن به تن درگیر می شد همچنین زرهی نیمتنه و زره ای ساخته شده از چرم که باریکه ی فلزی میخکوبی شده ای روی آن قرار داشت به تن می کرد. برای محافظت از نرمه های ساق پای جنگجو چکمه های او مربح های آهنین داشت که به سطح داخلی چکمه ها نسب شده بودند به علاوه هر جنگجو سپر سباکی را حمل می کرد که از ترکه درخت بیت ساخته شده بود و روکشی چرمی داشت جنگجویان عالی رتبه کلاه خودی از چرم یا آهن بر سر می گذاشتند های معمول عبارت بودند از دو کمان مرکب و یک ترکش بزرگ حاوی دست کم شست تیر سواران سباک اسله شمشیری کوچک و دو یا سه زوبین حمل می کردند در حالی که سواران سنگین نسلهه مسلح به یک شمشیر، یک تبر جنگی یا گرز و یک نیزه سه متری بودند هر سرباز بر اسب خود لباس، قابلمه گوشت خشک شده، غمغمه آب، سوهان برای تیز کردن تیرها و سوزن و نخ حمد می کرد خرجینی که بعضی از این اشیا را در آن می نیز مفید بود زیرا از معده گاو ساخته شده بود و رتوبت ناپذیر و قابل اتصاب بود. هنگام عبور از رودخانه در صورت لزوم میشد از این خرجین به عنوان ای برای شناورماندن استفاده کرد. آمادگی برای جنگ به محض اعلان همه مردان می بایست برای جنگ آماده می شدند. از هر مرد هنگام احزار شدن انتظار می رفت. که همراه با چهار یا پنج اسب به هر جا که واحدش مستقل می سفر کند. سپاه مغول با عصبهای اضافی برای هر جنگجو قادر بود با سرعتی قابل ملاحظه پیش کند. همسر یک مرد مسئول بود که دائما خرجین او را پر از گوشت خشک شده و شیر دلم شده و کیسه چرمیش را پر از غمیز نگه دارد. به طوری که مرد با اعلانی کوتاه برای سفر آماده شود زن همچنین می بایست کاری میکرد تا پوستین جورابهای نمدی و چکمی چرمی مرد برای پوشیدن آماده باشد زنان مغل برخلاف سایر زنان در صده سیزده میلادی مسئول تمامی اموال شوهران خود بودند و طبق حکم شوهرانشان میتوانستند به تجارت و خرید و فروش بپردازند اما مسئولیت مقدم یک زن مغلان بود که نیکنامی شوهر پیدا گردانیده باشد و نام او بلند کرده. اگر ارتش به مسافتی دور آزم می شد زنان و کودکان با فاصله ای به دنبال سپاه می رفتند. اگر ارتش به خارج از سرزمین مغولان ره سپار می گروه های خانوادگی را نیز برای تحییه ی غذا می بردند. حالت قابل انتقال منازل مغولان، برای عملیات نظامی گسترده مناسب بود چنان که مغالان می توانستند همه اجزای خانه را با خود ببرند و منازل خود را در موقع حرکت نیز به راحتی برپا کنند بازی های جنگی. چنگیز خان برای تمرین دادن ارتش عشق کوچنشینان به شکار را دستمایه تمرینات نظامی قرار داد جنگجویان هنگام شکار گوزن گراز وحشی و گرگ می آموختند به صورت یک واحد بیاندیشند و عمل کنند. تمرینات شکار یا بازی های جنگی در هر زمستان به مدت سه ماه انجام می شد و همه مردان ملزم به شرکت در این شکارهای گروهی بودند. همان فنونی که برای بازی کشتن استفاده می شد بعدن در میدان جنگ به کار گرفته می شد. یکی از این فنون حمله سوری نام داشت که از طریق آن شکار با حمله یک یا دو سوار به هرکست در می در ادامه ی حمله حیوان به داخل تره کشنده می شد. همین که شکار به محل مورد نظر می حلقه یا سواران منتظر برای کشتنش نزدیک می جنگجویان شیوه حمله سوری را با شرایط میدان جنگ وفق می به این ترتیب که گروهی از سواران موسوم به سربازان انتحاری یا منگودای دشمن را به محلی می که نیروی بزرگتری از سربازان و مغل آنجا در انتظار بودند. منگودای مستقیمن به صفه دشمن حمله می و پس از نزدیک شدن به تیر رس آنها ناگهان برمیگشتند و به تاخت اغب نشینی می کردند. فرماندهان دشمن معمولا به تقریب آنها می پرداختند و آنان به زودی دشمن را به دامی تدارک دیده شده می کشندند مغولان شیوه های بسیاری از این دست برای پیشبرد برد جنگی خود داشتند شیوه هایی که هنگام شکار آموخته بودند یکی از عجیبترین تمرینات نظامی آنها شیوه ی احاته کردن و نزدیک شدن بود که رابرت مارشال آن را چونین شهر داده است اقدام دیگر صف کشیدن بخشی از سپاه بود در امتداد آنچه میتوان خط شروع نامید و گاه 130 کلومتر طول داشت. با یک علامت تمامی افراد با اسلحه کامل چنان که گویی به جنگ رفتند در حرکتی به طرف خط پایان در صدها کیلومتر دورتر پیش میتاختند. خط پایان معمولا نقطهی در پناه تپه ای بود که از آنجا خان و اطرافیانش میتوانستند. پیشرووی را نظاره کنند طی روزهای بعد انبوه سواران پیش میرفتند و همه حیواناتی را که در طول راه به آنها برمیخوردند میرانند یا در جلو خود حرکت میدادند. طی شکار هنگامی که سواران به خط پایان نزدیک میشدند جناها شروع بهتاختند به جلو و فاصله گرفتن از قلب سپاه مینمموند و به این ترتیب به تدریج غص بزرگی را ترسیم می کردندند و باز جلوتر جناحا برمیگشتند و به طرف یکدیگر میتاختند و به این ترتیب همه حیواناتی را که در منطقه‌ای به طول صدها کیلومتر حرکت داده بودند به دام میانداختند در طول حرکت کشتن حیوانات ممنوع بود ولی اگر سواری میگذاشت که حیوانی از دام بگریزد این برای او ننگی بزرگ به شمار می رفت در سراسر تمرین افسران در پشت سر مردان میتاختند و با فریاد فرمان میدادند و حرکت را هدایت می میکردند در پایان این تمرین خان از جایگاه خود پایین میآمد و حیوانات منتخب خود را از حلقه محصور می میبرد عملی که نشانگر مهارت های شکارگری او در برابر همه افراد بود پس از انجام این کار توسط خان هر سربازی بخت آن را داشت تا مهارت های خود را با شمشیر نیز یا کمان در مقابل افسران خود نشان دهد چون این مهارت‌های شکارگری به آسانی به مهارت‌های جنگی تبدیل می‌شد با انجام همین عملیات در برابر دشمن امکان داشت که سربازان دشمن بی آنکه خبردار شوند تحت محاصره قرار گیرند انقلابی در ارتباطات چنگیز برای هماهنگ ساختن تمرینات نظامی فرماندهان و سربازان خود نیازمند یک شیوه موثر ارتباطی بود که بتواند فواصل ایجاد شده به واسطه 380 میلیون جریب دشت پهناور مغولستان را به هم پیوند دهد. مغول‌ها برای باخبر شدن از آن‌چه حتی در دورترین حدود امپراتوری اتفاق می‌افتاد، شبکه ارتباطی پیچیده‌ای موسوم به یام ایجاد کردند. که برای سده 13 میلادی یک هنر به شمار می رفت این شیوه برای مخابره پیام ها به دادن علائمی به وسیله پرچم یا مشعل و سواران متکی بود این سواران فرستادگان رسمی خان بودند و غالبا در شب یا روز بدون توقف و حتی در حال خواب میتاختند سواران فرمانروا زنگ هایی به خود می آویختند که نزدیک شدنشان را به ایستگاه های راه علامت میداد در ایستگاه ها اسببی تازه نفس در کنار جاده در انتظارشان بود در هر زمانی که این سواران به اسببی تازه نفس احتیاج داشتند نزدیک ترین اسب بدون توجه به اینکه متعلق به چه کسی است به فرمان خان می بایث در اختیارشان قرار می گرفت بهیکها قالبا پیاده نمی شددن بلکه حین تاخت کامل اسب ها را عوض می کردند به این طرریق، پیک های فرمان روام می توانستند مسافتی را که پیمودن آن به طور عادی هفته ها به طول می انجامید تنها ظرف چند روز طی کنند در مواقع جنگ این سواران برای رساندن اطلاعات از یک فرمانده به فرماندهی دیگر مسافت های طولانی را طی می کردند زیرا جبه های جنگ غالباً بسیار گسترده بود در نتیجه همه واحد ها می توانستند با هم در ارتباط باشند این شیوه خان را قادر میکرد بر سپاه گسترده خود در جبهه های مختلف و متعدد نظارت داشته باشد. همچنین به مغان نسبت به دشمنان آنها که در ایجده هماهنگی میان سپه های بزرگ خود دشواری داشتند برتری واضحی میبشید.